سوره اسراء اعوذ بالله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا این المسجد الحرام الى المسجد الاقصال الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا اینه هو السمیع البصیت به نام الله که بخشاگنده و با رحمت است پاک و است خدایی که یک شبه بنده خود پیانبر را از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا سیر داد همان جایی که اطرافش را با برکت گرداندیم تا برخی آیات و نشانه های خود را به اون او نشان دهیم. بطعا او شنوا و بیناست و به موسا کتاب عطا کردیم و آن را مایه هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم و گفتیم که کارساز و تکیگاهی جزمن انتخاب نکنید ای فرزندان کسانی که با نور در کشتی نجات حملتان کردیم بدانید که او بنده شاکری بود و در آن کتاب به بنی اسرائیل اعلام کردیم که شما دو بار در زمین فساد و تباهی خواهید کرد و سلطه بزرگی را مرتکب خواهید شد. هنگام که نخستین وعده تحقق بیافت، گروهی از بندگان خویش را که جنگاورانی قدرتمند بودند، بر شما مسلط کردیم، تا برای پیدا کردن مجرمان حتی خانه ها را جستجو کنند، و این وعده عملی شد. سپس شما را بر آنها مسلط کردیم، و به واسطه انبال و فرزندان یاری تا نمودیم، و نفراتتان را زیاد کردیم. بدانید اگر نیکی کنید در حقیقت به خود کردید و اگر مرتکب بدی شوید باز به خود روا اید بدانید اگر وعده دوم پرارسد کسانی را بر سرتان خواهیم فرستاد که آثار اندوه در چهره هایتان نمایان شود و از وحشت به مسجد الاغسا پناه خواهید برد همچنان که بار اول پناه بردید بدانید، آنها را به زیر سلطه خود بگیرند، نابود می سازند. شاید پروردگارتان بر شما رم کنند. اگر از این بازگردید، ما نیز از مجازات شما باز می و بدانید که جهنم را زندان قافران قرار داده به راستی این قرآن، انسان را به بهترین و قابل اعتمادترین ترین هدایت می کند و به اهل ایمان، همانهایی که اعمال نیک و مفید انجام میدهند، بشارت می‌دهد که از پاداش بزرگی بهرهمند خواهند شد و برای آنان که به آخرت ایمان ندارند عذاب دردناکی تدارک دیدی گاه انسان به واسطه دعایش شری را به جای خیر طلب می‌کند حقیقتا انسان همواره تاب زده بوده است شب و روز را دو نشانه از نشانه‌های خدا قرار دادیم پس وقتی نشانه شب را معو میکنیم نشانه روز روشنگر را جایگزینش میکنیم تا فضل پربعدگارتان را بطلبید. و شمار سالها و حساب کارتان را بپرمید حقیقتا هر چیزی را به تفصیل شهر کردیم پرمنده اعمال هر انسانی را چون طوق برگردنش انداخت و کتابی را در روز قیامت روبرویش باز کنی تا در آن بنگرند بخوان نامه اعمالت را که امروز تو خود برای حسابرسی عمل کرده‌ات کافی هستیم. هر کس به راه حق هدایت شود این هدایت به نفع خود اوست و هر کس گمراهی پیشه کند به زیان خود عمل کرده است و هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نخواهد کشیم و ما نیز تا پیامبری را برای راهنمایی نفرستیم هیچ قومی را به کیفر دستاوردشان مجازات نمی هنگامی که بخواهیم اهل شهر و دیاری را نابود کنیم ابتدا مرفهان آن شهر را امر به بکاری کنیم و چون نافرمانی و مخالفت کنند و حجت آنها تمام شود بیدرنگ آنجا را در هم می خوبیم و چه بسیار مردمی را بعد از نو به خاطر عمل کرده نابود کردیم بدان همین قدر که پروردگارت از گناهان بندگانش آگاه و بیناست برای قضاوت کردن کافی است هر کس خواهان زندگی زود مادی است آن اندازه که بخواهیم و به هر آن کس که اراده کنیم به سرعت به او ایم اما بداند که عاقبت کارش دوزخی است که برایش تدارک دیده زیرا او مزموم و رانده شده از درگاه الهی است اما کسانی که به حقایق ایمان دارند و خواهان زندگی جاویدند و تمام تلاش خود را برای رسیدن به آن مصروف می‌دارند، بدانند که سعی و تلاششان بدون پاداش نیست همین ها طلب کنندگان دنیا و هم آنها طلب کنندگان زندگی جاوید را از عطای پروردگارت بهره می دهیم که لطف و عطای پروردگارت از کسی مهم نشده است ببین در دنیا چگونه برخی را بر برخی دیگر به خاطر نوع عمل برتری داده درجات در جات و امتیازات آخرت؟ از این هم بیشتر و والاتر است هیچگاه با الله خدای دیگری را قائل مشو که نکوهیده و خار می و پروردگارت حکم کرده است تا هیچ چیزی را جز او پرستش نکنید و به پدر و مادرتان نیکی کنید و چنانچه هر کدامشان در سن پیری نزد تو باشند آنها را میازار و صدایت را بر روی آنان بلند مکن و همواره به بهترین شیوه با آنان سخن بگو وصف لهما جنا حد من الرحمه ارحمهما كما از روی مربانی و تواضع نهایت احترام را برایشان قائل شو و برای آنها دعا کن و بگو پروردگارا همان گونه که مرا در کودکی پرورش دادند آنها را مشمول رحمت خیش کن پروردگارتان به آنچه چه در وجودتان است از هر کس دیگر آگاه‌تر است هرگاه انسان‌های سالمی باشید و برای جبران اعمال گذشته اقدام کنید بدانید که خداوند توبه‌کنندگان را می‌آمرزد حق خیشاوند و نیز مسکین و در راه مانده را ادا کن اما هرگز اصرافکاری مکن زیرا کاران برادران شیاطین هست و بدانید که شیطان نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس بود و هرگاه نتوانستی به مستمندان کمک کنی و از آنها روی گرداندی در حالی که خودت انتظار رحمت پروردگارت را داری اقل با آنها به بهترین وجه سخن بگو دستت را از روی خستت به گردنت زنجیر مکن تا به کسی چیزی ندهی و نیز چنان رفتار مکن که هر چرا داری از کف بدهی و ملامت زده و خسرت خورده گوشه بنشین. بدان که پروردگارت رزق و روزی هر کس را که سلاح بداند رسعت می‌بخشد و یا بر او سخت می‌گیرد او به موقعیت تمامی بندگانش آگاه و بیناست هیچگاه از ترس فرق فرزندان خود را نکشید زیرا این ماییم که هم به آنها و هم به شما روزی می دهیم کشتن فرزندان خطای بزرگی است و به زنا نزدیک نشوید زیرا علاوه بر آن که گناه بزرگی است بد راهی می باشد همچنین کسی که خدا جانش را محترم داشته نکشید مگر بر اساس موازین حق و عدالت و بدانید کسی که مظلومانه کشته شود به اولیاء خونش قدرت انتقام داده ایم. اما آنها نباید انتقام را از حد آدلانه آن بگذراند. زیرا نیز مورد حمایت است. به بهترین وجه به مال یتیم نزدیک نشوید تا زمانی که به بلوغ و رشد عقلی برسد. به عهد وفادار باشید. زیرا عهد و پیمان، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و انگام اینکه چیزی را وزن و پیمانه می کنید آن را با ترازوی درست و دقیق انجام دهید زیرا علاوه بر آنکه برای شما نیک و برکت است عاقبت به خیری نیز دارد و در رابطه با چیزی که از آن علم و آگاهی نداری پافشاری و سماجت جاهلانه مکن زیرا دستاورد گوش و چشم و دل دقیقا مورد معاقبه قرار میگیرد و روی زمین با غرور و تفاخر راه برو زیرا با این کار نمیتوانی زمین را بهش کافی و نه به بلندی کوها برسی تمام این کارهای ناپسند نزد پروردگارت ناخوشایند است این از حکمت است که پروردگارت به تو وعی کرده است هیچ خدایی را با الله قائل مشو که در جهنم می و ملامت زده و مطرود می این چگونه سخنی است؟ آیا خداوند پسران را برای شما قرار داده و خودش دخترانی از فرشتگان برگزیده است؟ حقیقتا سخن گران و زشتی بر زبان جاری میکنید. ما حقایق گوناگونی را در این قرآن آورده ایم تا مردم پند بگیرند. هرچند که منکران حقیقت را جز نفرت چیز دیگری نمی افزاگد. بگو اگر همانطور که ادعا می کنند چنانچه با خداوند بزرگ خدایان دیگری می بودند تا به حال باید راهی به عرش الهی پیدا می کردند. او پاک و بی نقص است و به مراتب برتر و والاتر از چیزی است که می پندارند. تمامی آسمان های هفتگانه و زمین و هرچه در آنهاست مشغول تصویح خداوند بزرگ است. و هیچ چیزی وجود ندارد مگر که در حال تصویح و ستایش خداست اما شما این تصویح و تقدیس را درک نمی‌کنید. بدانید که او بردبار و آمرزنده است. هنگامی که قرآن میخوانی ما بین تو و آنهایی که آخرت را باور ندارند پرده زخیم میکشیم بر دلهایشان پرده میکشیم تا حقیقت آن را درک نکنند و گوشهایشان را چنان سنگین میکنیم تا هنگامی که پروردگارت را در قرآن یگانگی یاد میکنی به تو پشت کنند و از تو دور شدند ما خوب میدانیم که آنها به چه نیت آیاتی را که تو می گوش می و یا در نجوایشان با یک دیگر چه میگویند؟ آن ظالمان میگویند شما یک مرد جادو شده را پیروی می کنید ببین چگونه برای تو ضرب المثل درست می کنند؟ بدون تردید آنها گمراه شدند و راه به جایی نخواهند داشت گفتند مگر می شود وقتی ما تبدیل به استخانهای پوسیده و مشتی خاک شدیم دوباره به آفرینشی جدید برانگیخته گردیم بگو چه سنگ باشید چه آهن و یا هر مخلوقی که در نظر شما از آن سخت تر است باز ما قادر به زنده کردن شما خواهیم بود بدان که آنها خواهند گفت چه کسی ما را بعد از مرگ به حال اولمان برمیگرداند؟ بگو همان کسی که اول بار شما را آفرید آنها سرهایشان را از روی تعجب در برابر تو کج می کنند و میگویند این وعده چه زمان خواهد بود بگو شاید نزدیک باشد همان روزی که وقتی شما را فرا بخوانند ستایش گوگان اجابت می در حالی که گمان می جز زمان اندکی نگذراندهید به بندگانم بگو که با یک دیگر به بهترین وجه سخن بگویند زیرا شیطان به واسطه های زشت و ناپسند در صدد فساد و تبایی ما بین آنهاست بدانید که شیطان برای انسان یک دشمن واقعی است پروردگارتان از هر کس دیگری به حال شما آگاه تر است اگر صلاح بداند شما را مشمول رحمتش قرار میدهد و اگر صلاح بداند عذابتان می کند. و بدان که ما ترا به عنوان وکیل مدافع آنها نفرستادیم و پروردگارت به هر کس که در آسمان یا زمین است آگاهتر است ما برخی از پیامبران را نسبت به برخی دیگر برتری دادیم و به داوود زبور را بخشیدیم بگو کسانی را که به جای خداوند میپندارید بخوانید. آنها نمیتوانند بلاها را از شما دور کنند و نمیتوانند تغییر مثبتی در زندگیتان ایجاد نمایند کسانی را که به آنها توسل می کنند, خودشان وسیله ای را می جوگند تا به واسطه آن به پروردگارشان تقرب جویند و به رحمت الهی امیدوارند و از عذابش بیمناک زیرا عذاب پروردگار ترسناک است هیچ دیاری نیست مگر آنکه قبل از وقوع قیامت نابودش کنیم و یا به سبب عمل به عذاب شدید گرفتارشان سازیم و همه اینها در کتاب الهی نوشته شده است آنچه مانع ارسال معجزات ما شد فقط این بود که پیشینیان آنها را تکذیب می کردند چنان که را به عنوان معجزه به قوم سمود دادیم اما آنها با کشتن آن ستم روا داشتند بدانید که ما معجزات را جز برای هشدار و اتمام و حجت نمیفرستیم و به تو گفتیم که پروردگارت بر مردم اقاطه کامل دارد بدان خوابی را که به تو نشان دادیم و درخت ملعونهی که در قرآن ذکر شده فقط برای امتحان مردمان است ما به آنها هشدار می دهیم. اما جز بر توقیان و گستاخی خود نمی و یادار هنگامی که به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید، همه به حکم اطاعت سجده کردند مگر ابلیس که گفت چرا کسی را که از گل آفریدهی سجده کنم؟ و ادامه داد چرا چون موجودی را بر من برتری دادی؟ اگر تا روز قیامت محلتم دهی، جز اندکی همه فرزندانش را در اختیار خود میگیریم؟ خدا گفت برو که جزاگ تو، و هر که از تو تباییت کند جهنم است که مجازاتی تمام است. هر کدام از این آدمیان را که میتوانی با صدای خود وسوسه کن با سوار نظام و پیاده نظامت بر آنها وارد شد و در انبال و فرزندانشان شرکت جوی و به آنها وعده بده اما بدانید که وعده های شیطان چیزی جز نیست اما بدان که تو بر بندگان من کسانی که تسلیم حق شدند هیچ تسلطی نداری زیرا حمایت پروردگار تو آنها را کفایت می کند این پروردگار شماست که کشتی را بر پهمه دریاب پیش میبرد تا شما روزی خود را از فضل و کرمش جستجو کنید بدانید که او نسبت به شما مهربانه هنگام که در درگاه بلایی دامنگیرتان چبد هر نجات بخشی جز خدا از نظرتان محف می شد. و هنگامی که خدا نجاتتان دهد و شما را به خشکی رساند دوباره از او روی گردان می به راستی انسان موجود است. آیا از این که شما را در ساحل فرو برد خود را ایمن میدانید؟ یا طوفانی پر ریگ و خاک بر سرتان مسلت کند؟ در حالی که هیچ پناهی نیابید و یا خود را ایمن میدانید از اینکه بار دیگر شما را به دریا بازگرداند و دشار توفان طوفان کوبنده ای کند و به خاطر دستاورد کفرآلودتان غرقتان کند در حالی که کسی که ما را برای این کار موافقه کند نیابید ما بنی آدم را گرامی داشتیم و هم در دریا و هم در خشکی آنها را همراه کردیم و از نعمتهای پاکیزه روزیشان دادیم و بر بسیاری از مخلوقات خیش تسلط و برتری بخشیدیم بیاد آورید روزی که هر جماعتی را با رهبرانشان فرا بخوانیم. در آن روز نامه اعمال هرکس به دست راستش داده شود. آنها دستاوردشان را می‌خوانند در حالی که کمترین ظلمی به آنها نخواهد شد و هرکس در دنیا نسبت به درک حقایق کور بوده است. در آخرت نیز نابینا و گمراهتر است. نزدیک بود از حقایقی که به تو وحی کرده بودیم منحرفت کنند تا غیر آن را به ما نسبت دهیم تا در آن صورت آنها با تو دوست شوند و اگر تو را در راه حق ثابت قدم نمی کردیم نزدیک بود کمی به آنها مایل شوی که اگر چنین می کردیم و به باطل رغبت نشان میدادی تو را هم در دنیا و هم در آخرت دو برابر مجازات می کردیم. در حالی که برای رهایی از مجازات ما هیچ یاوری نمی آفدی. نزدیک بود منکران حق تو را از این سرزمین برکنند و آوارت سازند هرچند خودشان هم بعد از دو مدت کمی باقی می مندند. سنت ما در مورد پیامبرانی که قبل از و فرستاده ایم چونین است بدان که تغییری در سنت ما نخواهی یافت آنچه بخواهیم همان شود از زبال آفتاب تا نیمه شب نماز را به پایدار و از قرآن صوبگاهی غفلت مکن زیرا تلاوت قرآن صوبگاهی مشهود است پاره ای از شب را به تعجد بپرداز که این عبادت امتیازی برای توست امید آنکه پروردگارت تو را به مقامی در خور ستایش برساند وقل رب ادخللی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعللی من لدنك سلطانا نصرا و بگو پروردگارا مرا به راستی و صداقت داخل کن و صادقانه و سرفراز خارج ساز و همواره از سوی خودت حجتی یاری کننده برای من قرار بده بگو حق آمد و باطل رفت بدان که باطل است. و من القرآن ما هو شفاه و رحمت للمؤمنین و لا یزید غالمین خسارا به را نازل کردیم زیرا برای اهل ایمان شفا و رحمت است هرچند ظالمان را جز خسارت نمی افزاید هنگام که به انسان نعمت می دهیم، از حق روی بر آمد و مغرورانه دور می شود و چون بلایی به او رسد، معیوس می گردد. بگو، هر کس بر اساس شیوه خیش عمل می کند و این پروعدگار تانه است که بهتر میداند کدام یک عمل کردش برای حق و ادایت نزدیکتر است. از تو درباره روح سوال می کند. بگو، روح؟ نشعت گرفته از امر پروردگار من است و به شما از علم و آگاهی اندکی بیش ندادند بدان که اگر بخواهیم تمام آنچه را به تو کرده ایم باز پس می‌گیریم و در این صورت تو هیچ یاوری در برابر ما نخواهی یافت مگر مشمول رحمت پروردگارت شوی زیرا فضل و کرم او بر تو بسیار زیاد است بگو اگر تمام انسانها و جنیان جمع شوند تا مثل این قرآن را بیاورند و با تمام قدرت نیز یک دیگر را پشتیبانی کنند امکان ندارد که بتوانند و ما در این قرآن برای مردم از هر حقیقتی مثالی آوردیم اما بیشتر مردم جز ناسپاسی کاری نکردند و گفتند به تو ایمان نمی آوریم مگران که از زمین خشک و سوزان برای من چشمه جاری کنی یا باقی از درختان نخل و انگور داشته باشی و از میان درختانش نهرها جاری کنی یا پاره پاره آسمان را آنچنان که ادعا می بر سرمان ببارید و یا خدا و فرشتگان را نزد ما حاضر کنی یا خانه ای از خشتهای طلا داشته باشی یا به آسمان بالا روی و ما آسمان رفتنت را باور نکنیم مگر که کتابی برای من بیاوری تا آن را بخانیم بگو حاک و منزه است پروردگار من آیا مگر من غیر از یک بشر فرستاده خدا چیز دیگری هستم؟ هنگامی که هدایت قرآن به سراغ مردم آمد تنها چیزی که مانع پذیرش آنها شد این بود که گفتند مگر می شود خداوند بشری را پیامبر گرداند بگو اگر حتی بر روی زمین فرشتگان زندگی میکردند و با خیال راحت راه می رفتند، باز ما فرشته ای از جنس خودشان را به پیامبری از آسمان می فرستادیم. بگو بین من و شما گواهی خداوند کافی است زیرا او به وضعیت بندگانش آگاه و بیناست هر کس را خداوند هدایت کند او هدایت یافته راستین است و هر کس را در گمراهی بگذارد هیچ یاوری غیر از خدا برای او نخواهی یافت و آنها را در روز قیامت بر صورتهای واقعیشان محشور میکنیم در حالی که کور و گنگ و کرند و جایگاهشان جهنمی است که هرگاه زبانه آن فرونشیند شعله دیگر بر بران بیفزاییم و این به خاطر آن است که آیات به حق ما را انکار کردند به گفتند چگونه ما وقتی تبدیل به استخانهای پوسیده و خاک شدیم دوباره به خلقتی تازه در خواهیم آمد آیا نمی بینند خداوند است که آسمانها و زمین را خلق کرده و قادر از مثل آنها را بیافریند و برایشان عمر معینی قرار داده که در آن تردیدی نیست؟ بدانید که ظالمان کاری جز انکار و ناسپاسی نمی‌کنند. بگو اگر شما مالک تمام گنجین های رحمت پروردگارم بودید باز از ترس فقر چیزی به کسی نمی‌دادید. زیرا انسان موجودی تنگ نظر و بخیل است ای پیامبر به موسا نه معجزه آشکار دادی از بنی اسرائیل بپرس انگاه که موسی مزدشان آمد و فرعون به او گفت ای موسا گمان می‌کنم تو جادو شده ای؟ و موسی گفت خوب می‌دانی، این معجزات را جز پروردگار آسمان ها و زمین نفرستاده است و فرعون، تو را نابود شده میبینم و فرعون قصد کرد تا آنها را از آن سرزمین پریشکن کند. اما ما هم او و هم تمام کسانی که با او بودند را غرق کردیم و پس از او به بنی اسرائیل گفتیم در این سرزمین ساکن شوید و چون روز قیامت چبد همتان را با هم محشور گردانیم. قرآن را به حق نازل کردیم و به حق نازل شده است بدان که ما تو را نفرستادیم مگر برای آن که بشارت دهنده و هشدار دهنده باشیم و قرآن را آیه آگه نمودیم تا با تعنی بر مردم بخوانی. بدانید قرآن را به کمال نازل کرده ایم. بگو چه آن را باور کنید و چه نکنید آنها که پیش از این دارای علم آگاهی هند وقتی قرآن برانها خوانده شود به خاک افتاده و سجده می کنند. و میگویند پاک و بینقص است پر بعد گار ما و قطعا بعدش ترقبی است به خاک میافتند و گریه های آشقانه سر میدهند و این باعث ازدیاد فروتنیشان می شود بگو چه او را الله بخوانید چه رحمان هرچه که بخوانید بدانید که بهترین نام ها از آن اوست و انگام نماز نه صدایت را بلند کن و نه آهسته گردان بلکه میان این دو راهی معتدل را برگذید بگو صدایش مخصوص است که نه فرزندی برگزیده و نه شریکی برای اداره هستی دارد و نه یاوری به گوت در زقفوسن اختیار کرده است همباره او را بسیار بزرگ شمار و قل الحمد لله الذي لم يتخذ و ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العلی العظیم گفت خداوند بلند مرتبه و عزیم کاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و علیه و سلم